ایران وج بازنگری در تاریخ قلم رو میانی به نام یزدان با عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی خدمت شنوندگان گرامی همراهان صدای امید از رادیوی اینترنتی www.sodaiaomid.com با اولین قسمت از سری برنامه ایران وج در خدمت شما هستیم همونطوری که در آخرین قسمت یعنی قسمت سی و برنامه برابری خدمت شنوندگان گرامی ارز کردیم اون برنامه سی قسمتی که در سی قسمت پونزه دقیقهی به اتمام رسید مقدمهی بود برای این برنامه خب دغدغه ما و هدف ما در این برنامه چیست؟ اول در یک جمله این رو خدمت دوستان و شنوندگان گرامی عرض میکنم. کنند اصلی بازندیشی و یا حتی اگر ادعا نباشه بازنگری در مورد تاریخ ایران اون تاریخی که به عنوان حالا تاریخ رسمی چون اگه بگیم تاریخ رسمی یعنی میپذیریم رسمیه نه نمیپذیریم رسمیه به عنوان اون تاریخی که تدریس شده و تدریس میشه خصوصا در این صد 150 سال اخیر تاریخی که خب نشون میده که یک فردی به اسم دیاوکو از شهر حما، که الان در سوریه هست یک زمانی اونجا در تبعید بوده میاد به عنوان قاضی در حکمتانی یه حکومتی تشکیل میده به اسم مادها تاریخ شروع میشه. یعنی یه چیز حدود 2800 سال پیش آیا قبل از 2800 سال پیش در ایران در این فلات ایران در این سرزمین هیچ خبری نبوده حکومتی تشکیل نمی شده آیا اندیشه سیاسی منسجم در این سرزمین قبل از اون نبوده صناعت زراعت فلاحت نبوده اینها سوالاتی است که در واقع دغدغه‌ای است که ما داریم و می‌پرسیم از اون اساتیدی که در واقع این تاریخ رو تدریس می‌کنن و یا این سوال رو دارند و نمی‌کنن یا به دلایل این سؤال رو بی جواب گذاشتند از شنوندگان گرامی که این برنامه رو از الان گوش می‌دن علل خصوص کسایی که آشنایی با تاریخ دارن علل خصوص کسایی که متأسفانه این تاریخی که تدریس میشه رو تا حدودی وحی منزل می‌دونن تورات و انجیل می‌دونن از اونا می‌خوایم که اول از همه از واکنش های هیستریک و واکنش هایی که از روی عصبانیت هستش کاملا بپریزن بحث کاملا علمی هستش ما تا هر جا، تا هر وقت، تا هر زمان که شما بخواهید منتقدین وقت بهتون داده میشه در انتقاد به مباحث مطروحه در این برنامه میتونید, ادامه، میتونید حضور داشته باشید و بحث ها رو ادامه بدید بدون هیچ گونه حب و بغض بدون هیچ پیش های متودولوژیک کاملا در یک فضای علمی و دوستانه حاضریم بحث بکنیم ولی اون چیزی که ما میخواهیم توی این بحث پیگیری بکنیم تحلیلی هستش که روی تاریخی که تدریس میشه هستش و مدعی هستیم که این تاریخ تاریخ درستی نیست و ایراد داره و دلایل خودمون رو خواهیم گفت لذا از کارشناسان و از حتی مردم عادی هم میخواهیم که بحثها رو دقیق پیگیری بکنن فکت هایی که ما میدیم مراجعی که ما میدیم منابعی که ما میدیم رفرنس هایی که ما میدیم خودشون هم مراجعه کنن و حالت تقلید کورکورانه نداشته باشند و دقیق مطالعه کنن و با مطالعه بپذیرن ما در این برنامه در خدمت کارشناسان و پژوهشگرانی خواهیم بود که در این حوزه کار کردند خود بنده حالا به صورت موقت حالا اگه خدا بخواد موقتا مجری هستم احتمالا بعدن به عنوان کاشناس حضور پیدا خواهم کرد ولی خب حالا تا انتخاب یک مجری جدید بنده فعلا مجری این برنامه هستم بنده محمد محبی هستم دانشجوی دکترای علوم سیاسی گرایش مسائل ایران و فارغ التحصیل سطح چهار جناب آقای مهرداد ایرانمر پژوهشگر آزاد و وبلاگ نویس و پژوهشگر فضای مجازی که احتمالاً با مقالات و نوشته ایشون اونایی که در مورد تاریخ ایران باستان کار کردن آشنایی دارن جناب آقای سورنا فیروزی فارغ کاشناسی ارشد ژنتیک از دانشگاه شهر کرد و همچنین فارغ تحصیل کاشناسی ارشد باستانشناسی از دانشگاه تهران که با پایان نامه خودشون تا حدودی این چالش رو ایشون مطرح کردن و حتما با نظراتیشون آشنا خواهیم شد و جناب آقای سعید کریمی دانشجوی فرهنگ و زبان‌های باستانی دوره کاشناسی ارشد دانشگاه علامه تباتبایی. ما کارشناسان دیگه‌ای هم داریم همچون خانم دکتر آزادی احسانی که فعلا قسمت قسمت‌های اول و دوم حضور ندارم ولی امیدواریم که در قسمت‌های آینده در خدمت ایشون هم باشیم خب ما اول بحث رو از اینجا میخوایم شروع کنیم با کاوشناسان گرامی چه دلیلی ما داریم که میخواییم این تاریخی که نگاشته شده اون رو به چالش بکشیم و بگیم که این تاریخ ایراد داره و باید تاریخ بازنویسی بشه اول بازندیشی بشه و بعد بازنویسی بشه جناب آقای ایران میره از شما شروع میکنیم این تاریخ الان چه ایرادی داره؟ خواهش میکنم مانند برنامه برابری که در خدمت های دکتر محبی بودیم برنامه رو بنده دوباره با نام ایران آغاز میکن ما اونجا به همتونکه دکتر محبی گفتن وعده دادیم که دنباله بحث رو تا زمانی که انسان ها از شرق آفریقا رسیدن به کرانه های فلات دیگه واگذار کنیم به این برنامهی که نامش ایران ویژ انتخاب شده. نخواستیم پرسیشی که پیش میاد همینطور که های دکتر محبی فرمودند اینه که این عده چرا جمع شدن چرا گرده هم اومدن چی میخوام بگن؟ میخوان تاریخ رو همونی که هست بگن که خب پشتش کتاب فروشی هست اگه ایرادی به این دارن و فکر میکنن چیز ای میخوان بگن خب چه ایرادی داره مگه تاریخ فعلی که داره بازگو میشه مشکلش چیه که اینها حالا بهش نقد دارن و حالا که نقد دارن اون حرفی که میخوان بزنن چیه حتما یه چیز دیگه است یک چیز جدای از اونه ما در سال نوت در خدمت آی سورینا فیروزی که اینجا تشریف دارن مناظری ترتیب داده شد از سوی هفته نامه در محل مکانی جمشید جاماسیان در تهران که ما در خدمت آی دکتر کامیار عبدی و آی دکتر مهداد ملکساده بودیم و همین بحث مطرح شد در جلسه دوم مناظره من رو به آی دکتر کامیار ابدی که چهرهای شناخته شده کشورمون هم هستن من گفتم آی دکتر ما تو این مناظره ها گرده هم اومدیم در واقع اینطوری جلوه داده شده که ما یک حرف نوعی داریم داریم اینو آمدیم عنوان کنیم و حالا بعد از این دفاع کنیم و سند بیاریم و اینا اما در واقع اینطور نیست هزاران سال مردم ایران به گونه اندیشیدن یک نوعی تاریخشون رو روایت میکردن. بله از 100 سال پیش غربیها ها اومدن مثل بقیه ممالک و به ویژه ممالک شرقیه روایت خودشون درباره تاریخ اون کشورها تعریف کردن دوباره به همونها ارائه دادن گفتن تاریخ شما اینه بله و از صد سال پیش میون منور الفکرهای کشور ما رایت شد این تاریخ جدید 100 ساله و اون تاریخ قبلی کم کم به فراموشی سپرده شد یعنی در واقع روایت شما روایت جدیدیه ما که هزاران سال مردممون همین میگفتن ما همین داریم میگیم تاریخ روایی ایران همون چیزی که بوده از کیومرس آغاز میشه منتها با اسناد علمی جدید دائم داره اونا تعیید میشه اما شما یک کوچی مطرح شده ست سال پیش به وسیله غربی که ما بهش میگیم کوچ سفالی بله و تنها سندتون یه تکه سفاله هرچی هم میگین هی حرفاتونه تاب میدین و هی میگین کی فلان نفس کویا از روسیه گفته اون یکی از آمریکا گفته هینس از اونجای دیگه گفته بدونی که سند درست به مردم ارائه بدیم اینم جا انداخته این نیست کتاب درسی و دیگه حالا موم لای درزش نمی از ژاپن و سنگاپور تا انگلستان و خود ایران و همه جا همین روایت میشه عزید. به هر که فرمودین از دیاکو آغاز میشه و چی میشه و این میشه و اون میشه تکرار تکرار تکرار چرا تاریخ موجود نیاز به نگری داره مطلب دیگه اینه که تا این تاریخی که الان هست دارن روایت میکنن به عنوان کتاب درسی این بر چه مبناهایی ارائه شده مبناهاش چی اینو میخوایم بگیم و نقدش رو هم ارائه بدیم حالا ما برای این بازاندیشی چه باید بکنیم و چه منابعی میخوایم به کار بگیریم چون سنت فراون داریم از این نظر هیچ کم و کسی نداریم حالا کدومی که از این منابع و اسناد رو باید چجوری بکار به کار بگیریم که بتونیم روایتمون رو دوباره روایت تاریخ کشورمون همون که تو هایی که مثلا دو کنت کونت میگه که زمان در ایران بوده، سفیر بوده از طرف فرانسه. میگه آقا در فرانسه مردم همین الان حتی ناپل اون رو هم نمیشناسن اما در قهوخانه‌های ایران شبها هزاران سال تاریخ در جریان این دورانی که ما تازه در یک دوران منحثی سر میبوردیم این تاریخمون بوده حالا ما به این تاریخ اسناد زیاد داریم حالا چگونگی و نحوه باسپیرای تاریخ موجود مبایسیه که ما میتونیم اینا رو پیگیری کنیم بله چون این متشکر. برنامه یک سال شاد ظاهرا به طول بکشه بله ما عجله نمی کنیم دقیقا. در همین حد این مقدمه رو دوستان داشته باشن از نظرات و دوستان دیگه هم استفاده میکنیم باز حرف برید گفتن زیاد من در خدمتتون است. متشکرم صدای امید رو میشنوید پول ارتباطی شما شنوندگان گرامی با این برنامه ایمیل info at صدای امید.com هست خیلی متشکریم از بیانات جناب آقای ایران مهر گرامی همونطور که فرمودن از کانت دوگوبینا ایشون نام بردن کانت دوگوبینا یکی از متفکرین قرن 19 فرانسوی بوده که با نظریه های نجادی در قرن 19 هم یک تقیانی رو شروع کردن برالیه موج روشنگ وی فردی کاملا نجات پرست هم بوده در یک نامه های نامه‌ای به الکسی دو توکویل میگه که او هم در واقع هم فکر کانت دوگوبیناسه کنم این نامه هاش به ترجمه شده توسط مهندس رحمت الله مقدم مراغیی که موقعی که ما اروپایی ها یا اجداد ما اروپایی ها در جنگل ها زندگی میکردن ایرانی ها دارای دولت و تمدن بودن اونم همین شخصی در واقع چنین چیزی رو میگه جناب فیروزی عزیز خیلی خوشحالی من از حضورتون در این برنامه زمین ساماله که میفرمایید با شنوندگان گرامی شما ایراداتی که به این تاریخ این تاریخی که توی این صد سال اخیر رسمی شده چه ایرادی به این وارد میدونید چه اشکالات این تاریخ داره و دلایلتون و مبناهایی که این تاریخ رو به چالش میکشین چی هستش ارزم به خدمتون که ما باید ببینیم که آیا این بازنگری که در ذهن ما در واقع امروز به وجود مداری در جاهای دیگه هم سابقه داره یا نه ببینید این جنگ جهانی اول دوم که در اروپا و آسیا را افتاد یه سری پیامدایی هم به خودش نشون داد یکی از این پیامدها باستان شناسی بود باز جون باستان شناسی چین یعنی ما در اونجا دیدیم که اینها بعد از جنگ با خودشون کلنجار رفتن و صحبت کردن که چی شده که ژاپن یک جزیره است که شاید مدنیتش به هزار سالم نرسه امروزه از ما چینی ها ادعای خاک خواهی میکنه یعنی مثلا خاک شرق چین رو ادعا می‌کنه مال ژاپن هست و اینها اشتباهشون رو فهمیده کجا بود در اونجا دیدن که صد 150 سال به تمسخور اسناد تاریخیشون پرداخت بودن اسناد بومیشون نه اسناد بومی اسنادی بودن که چینی ها بیشتر از این چیزی که الان شما به رسمیت می‌شناسید تاریخ دارن ولی این هاقا خب چون میره این داستان هایش پرشاخ و وجود داره سال های عجیب غریب برای حکومت ها وجود داره اینا رو نسل های مختلف باستان شنازی چین مسخره می‌کرد. بعد از جنگ جهانی اتفاق میافتاد. در یک دوره بعد از جنگ جهانی اینا دیگه گفتن باید بهیستیم و یک بازنگری کنیم یک بار ببینیم آیا اینا درستن یا نه؟ و این کار انجام دادن و بهتون ثابت شد که اون متون از حقیقت صحبت میکردن. دو تا سلسله‌ای داشتن افسانه فرضشونن و امروز به اثبات رسیدن. در جاهای های دیگه هم این دیده شد حالا نه با این ایدولوژی که ما از یک قضیه خاکهای کشوری فرار کنیم با این تیز که آیا ببینیم آزمون خطا بذاریم برای متون آیا اینا به سربلندی می رسن یا نه برای ایران هم همین قضیه است در ذهن ما یعنی چی؟ یعنی این که ما ببینیم که آیا همونطور که این متون یونانی متون بومی برای خیلی جاهای دیگه به اثبات رسیدن حقیقت و اعتبارش بر ایران هم سازگار هست یا نه این فلسفه واقعگرایانه و حقیقتجوی سرفیست که من شخصا در این موضوع پیگیری میکنم موضوع بعدی این هستش که چه اصراری بر حقیقت نمایاندن تاریخ فعلی بله. این خیلی عجیبی شما مثلا در علوم مختلف مثل شیمی میگن آقا تعداد عناصر انبو سر و تا پس بعدا میشه سر 15 تا این ایرادی نداره بله. یا تعداد سامانه خورشیدی یه زمانی نه تا بود امروز شده 8 هیچ ایرادی نداره میپذیرن ولی برای این پیشینه حضور ایرانی یا کان ایرانی در فلات و تعداد پادشاهانشون تعداد تا کاغاشون این وسواس عجیبی وجوده که اینا زیادتر نشه و خود این علامت سوال خیلی بزرگ ایجاد میکنه این چه فکری پشتشه اگر قضیه فقط علمیست همین دیاکوم روزه مورد انکار داره قرار میگیره با بیشرمی خیلی جالبی من... یعنی حتی میگن که این آدم هم افسانه بوده و ماتا خیلی تاریخشون جدیدتر هست رمایت یعنی... خودشون هم از سرش گرفتن کم کم داره دقیقه بل... ایچی بازی فقط برای تاریخ ایران داره انجام میشه و این چیز خیلی شگفت آوریست به نظر من ما تو هم خیلی مسرانه پاپیچ و پیگیر این مطالب اسناد بومی و حتی اسناد پیرامونی فرهنگ و تاریخ ایران بشیم. از جمله اسناد یونانی، ارمنی و در واقع حتی اسناد پس از باستان ایران. من ارزم به خدمتون که من فکر می کنم دستکن کمترین دستاوردی که این گونه بحثا چه در قالب پایان دانشگاهی چه در برنامه رادیویی و خیلی داستان های دیگه میزگیرد مختلف کمترین دستاوردی که برای شنونده یا پژوهشگر به بار بیاره این هستش که میزان درستی، نادرستی و آگاهی پیشینیان رو از گذشته خودشون به ما نشون میده که این بشر تاریخ نویس هزار سال پیش یا دو هزار سال پیش آیا واقف بوده به رخدادهای های زمان گذشته خودش یا نه هنوز بشریت به اون سطح فکر نرسید بوده و در مالی خولی تاریخی و ذهنی خودش به سر می بوده خیلی متشکلیم جناب آقای فیروزی گنامی ما در ادامه در خدمت شما هم خواهیم بود <تصفح> چنین آقای کریم یه اولا خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم تا اونجا که بنده اطلاع دارم خب تحصیلات در زبان زبانشناسی هم شما دارید ما میبینیم که تو این صد سال اخیر که چنین تاریخی در واقع نوشته شد یه شانس تاریخی هم آورد خب شانس تاریخی اونم تولید انبوه هست. ما صد سال پیش خب چاپ و این مسائل واقعا نداشتیم از 160 سال پیش اولین روزنامه تبعث میزساله‌ای شیراز در ایران چاپ شد کاغذ اخباری چون با چه مصیبتی چاپ می‌شد چاپ سنگی واقعا اون موقع کسایی که روزنامه چاپ می‌کردن بهشون باید آفرین گفت ولی امکاناتی که الان هستش کتاب‌ها رو تا تیراژهای بالادتی روش بعضی وقت‌ها تا تیراژهای صد هزاری و میلیونی چاپ میکنن نبوده لازمه این شانس تاریخی را اینها آوردن ولی میشه واقعا این تلسم رو شکست که درسته اون موقع نبود اون موقع ولی ما مطالعه نبوده سواد نبوده ولی در بین عموم مردم بین عوام مردم بین توده مردم،, مردم،, مردم پادشاهان نه تنها تاریخی پادشاهان استورهی هم ورد زبان مردم بود و در قهوه ها اسامی اونها و سرگذشت اونها میان مردم گفته می شده شما در واقع چه انتقادی رو به این تاریخی که در صد سال اخیر نوشته شده؟ وارد می به نام خدا با درود خدمت شهروندان عزیز راستش ما نخستین پرسشی که اینجا پیش میاد اینی که آیا همه دشمنانده اروپایی ما باید یک بار کنار بذاریم یا اینکه آیا هستند تو اونها کسایی که صادقانه کار کرده باشند. بله خوشبختانه میتونیم بگیم نزدیک 10 درصد از این دانشمندان هستند که تقریبا با ما همسو هستند. یعنی بله. اونها هم این تاریخ رو به این شکلی که الان داره تدریس میشه و خیلی هم جالبه که بدونیم دانش زبانشناسی یه برگ برنده داره و برگ برندهش اینه که کمتر میشه توش اعمال سریقه کرد بله یه سور قطعیادی هست زبان بله بله. کلمه که نمیتونه در... ما... که نمیشه بله مثلا ما در دانش وادشناسی و آواشناسی تقریبا با... حتی میتونیم آزماشگاهی که داریم که دانش فیزیک پشتش هستش نمیتونن به این راحتی به رو رد بکنن از این لحاظ داشت جامعه‌شناسی میتونه خیلی کمک بکنه به این که بگیم که این تاریخی گفتن واقعا درست نیست یعنی ما هایی در اوستا، های پهلوی و شاهنامه داریم که استوار می‌کنیم و ثابت می‌کنه که این مهاجرتی که اینها به صورت امروزه دارن میگن کاملا نادرست و دروغه من کلمه دروغ رو خیلی تاکید بکنم چون واقعا دروغه در میان مثلا میگن ایرانی‌ها صنعت نداشتن در صورتی که ما وجوهی بسیار ناوی در اوستا داریم که در مورد صنعت و اصلاحات گدازش فلس که ما نمیدم چجوری که اینا رو نادیده میگیرن و خیلی راحت ازش میگذرن یا اصلا همین نامی که این برنامه یه دلیل بسیار ویژه ای داره که پاسخ را و محکم میده بر همه این که این یعنی از هر زبان زبانشناسی هم باستانشناسی هم زمینشناسی و همه این دانش این پاسخ خیلی خوبی هستش بعد من خدمت شما عرض که اگر ما می‌خوایم بگیم مثلا شاهنامه افسانه است، نخستین پرسش پیش میاد چرا 30 سال زمان گذاشته که افسانه بسراغد؟ بله، جس که همونطور در عرض 1 سال همین کار بکنه. نیازی نبود که 30 سال بخواد این کارو بکنه. یا میان میگن فردوسی زمان پهلوی ولدت نبوده. واقعا آدم شگفت‌زده میشه چطور همه چیو میگن. پس چطور داستانه به پادشاهی رسیان اردشیر بابکان که در کارنامه اردشیر بابکان اومده باز چطور تونسته ترجمه بکنه اگر زبان پهلوی ولدت نبوده؟ پرسش بسیار زیادی هستش که دانش امروز نمی‌تونه است بهش پاسخ بده فقط ازشون سوال میکنیم میگن شما بسشینه نموشید میگن چون فلانی گفته میگه خب چرا میگن چون فلانی گفته فقط از رو همین کپی برداری کردم و تونستن به وسیله جان سرمایه‌داری این کتاباشون رو چاپ بکنن مقاله بکنن رادیو و تلویزیون‌های گسترده‌ای که داشتن تونستن این تاریخ جا بندازن و همطور که شما فهمیدین من اصلا نمی‌تونم فزیرم که به این ببین تاریخ بگیم تاریخ رسمی چون اگر که از بسیار مشکل داره یعنی از لحاظ زبان شناسی ما میتونیم ثابت بکنیم که هم چیزی که اینا میگن اصلا درست نیستش چطور ما در گات‌های اوستا حتی یک واژه غیر آریایی نداریم من اینو خیلی تاکید میکنم روش حتی یک واژه غیر آریایی پس چطور اینا این بومی‌ها کجا بودن که نتونسن کوچکترین تأثیری تو این زبان بذارن و امکان پذیر نیست چطور ما ز یا از قوم بحشی گافچران مذارب هم تا که اینا میگن یه به همچین تمدانی میرسن و تاریخ ایران یه قدرت میگیره. یه میان جاده میسازن پست میسازن گردونر میسازن. ارتشو میان میسازن اصلا چیزی نیست. چرا مثلا واژه گردونه انقدر تو زبان کاسی ها هیتی ها رفته پس رو از طرف اکدی وارد زبانشون نشده فعلا. پس از طرف آشوریان وارد زبانشون نشده شما با علی کریمی مثلا من ببخشید میونی کلامتون حالا چون ما میخواد بیشتر از بیانات شما استفاده کنیم خیلی همچی ایراد هستش وارده مثلا شما یه چیزی میگن مثلا میگن که یک قومی به اسم گریس ما میگیم یونان اونا میگن گریس منطقه‌ای که الان پایتختش آتنه 2800 سال پیش از منطقه از شمال اروپا میان توی منطقه به نام گریس درص 300 سال یک تمدن میسازن، دولت‌شرح، دموکراسی، فلسفه، پزشکی، بقراط میسازن، ارسطو میسازن، افلاطون میسازن. اصن مگه برای ساختن همین تمدنی حداقل 10000 سال فرصت لازمه، مگه میشه به این راحت چینی تمدنی ساخت؟ ارتش هخامنشی مثلا شما حساب کنید 20000 تا سرباز داشته باشه، اون 20000 تا سرباز 20000 سرباز مثل سوار داشته باشین، فقط ببخش دوستای میگم 20000 تا اسم، 20000 جفت نعل میخواد. شما میگید اون 20000 تا سرات 20000 تا شمشیر میخواد حداقل صنعت ذوب فلز یه همچین تمدنی یه همچین تشکیلاتی 5000 سال هم کمه بود. واقعا با هیچ منطقی نمیشه چنین چیزی رو پنج. نیاز به انباشت تمدنی داره انباشت تمدنی انباشت علم و انباشت سرمایه و این چیز داره. ادامه فرمایش شما بعد دائما ما همیشه میگیم میگیم این تاریخی که قریاورمای این شک نوشتم بیشتر به ساخت ساختن هالیوودی می‌خوره تا واقعیت یعنی اصلا هیچ قراری هم چیزیای پذیره. پرسش است مثلا که از دانشمندایی که خیلی هم علاقه استفان هستش توضیح یونان چقدر هم ایران هستش داره. هیچ هیچکونو از اینا رو بیان نمی‌کنن میان تقسیم بندی هایی میكنا میگن مثلا زبان شرقی ستم زبان غربی کنتم خب اگر اینطوره پس زبان کنتم چگونه است که ما در شرق ایران داریم یا زبان های اسلاوی که ستم مثلا چجوری هستش زبان ایرلندی که ازش ستم داره اون چجوری اینجوریه اصلا این تقسیم بندی هایی که کردن فقط فلعت به خاطر این بودی که خودشون کهن‌تر بدن و ایرانی ها رو مهاجر ببینن ایران بله در صورت که نوشته های باسه کاملا اینا اصلا رد میکنه اصلا نهی پذیر همچیزایی یعنی اینا رو به چالش میکشونه و ما الان میدونیم که حدود مثلا 40% درصد واژهای زبان یونانی غیر هند... به قول اینا هندو اروپایی که ما اصلا با خود همین واژه هم مشکل داریم یا مثلا 20% درصد واژهای سانگ زبان درایویدی وارد زبان سانگ شده و به حتی همونطور که کردن در زمان عرسی تو یک واژه هم نداریم که اینا خواستن واژه تنور رو یه جوری نسبت بدن به بومیان غیاریایی که اصلا همچیزی نیست ما هم در زمان خودش موارد این زمینه داریم می که ثابت میکن اصلا به شما هم چیزی نیست این واژه کاملا ناریاییه. ما معاصلا تنور نون داریم ما ه 500 سال پیشه بله پس اینا چطور بوده؟ اینا. یا مثلا میگم در مولینا اون موقع که آریایی نبوده. اینا. بله مثلا برای کشف گندم میگم ما پنج سال پیش بوده. خب ما از اینا سوال میکنید وقتی تنور 8500 سال داریم. خب ببخشید نه آهک می ریختن تو اون درست میکردن می خوردن. بس گندم رو میشناختن، جو رو میشناختن. اصلا همه جو اگه شما ریشه آریایی اشو بدونید کاملا یه چیز بسیار زیبایی داره که معنیش پیوسته زندگی کردن انسانه یعنی قلات با... در دیدون ها چیزی بودی که به انسان حیات می بخشیده. یعنی یک ریشه بسیار بسیار کوهن داره که بعدا با ما خواهیم پرداختدلیل شناسی بسیار زیاده و خوشپختاره چون دانش زمانشناسی داشتی نیست که به این راحتی مثلا همش راحت کرد سریقه بشه باش کاملا برخورد کرد خیلی میتونیم توی زمینه پیش بریم که ثابت کنیم که نه همچین چیزی دروغه و همچین مهاجرتی به این شکل به هیچ عنوان اتفاق افتاده گسترش آریایی درعه ایران هزاران سال قبل از این چیزی هستش که الان دارند میگن و میان همونطور تو که خدمتتون عرض کردم بیشتر به خاطر اینکه های زیادی دارن، های زیادی چاپ می‌کنن، تو دانشگاه هاشون ازش پشتیبانی میکنن این جا افتاده. و همونجوری خدمت که خدمتتون عرض کردم، من میگم که من جا افتادم، میگم نمیگم رسمی چون به شما قبول ندارم چیزی رسمی باشه. از دید اون‌ها رسمیه ولی از دیدمان من به شما رسمی نیستش. بله، متشکرم جناب آقای کریمی عزیز. از استفان پانوسی اسم بردید که کتاب خیلی گرانسنگی که در مورد تأثیر اندیشه های زرتوش بر افلاطون نوشته و به اضافه این واژه هندی اروپایی که اصلا مشخصه که برای چه چیزی بین هند و اروپا چی هست ایران هست اصلا برای تحتش را قرار دادن اسم ایران چه اسمی اصلا جعل شده جناب آقای ایران مهر گرامی یکی از مبانی که این تاریخ این تاریخی که ما باز هم میگیم 300 سال اخیر جعل شده اکثرش در واقع نمیگیم که حالا کامل جعل شده بلکه شاید راهی بودن چه تاریخی بوده ولی اینکه مثلا این کل تاریخ بگیم این جعله و این دروغ هست یکی از مبانیش یه فرضیه‌ای است که در قرن 19 مطرح شده که یک افرادی از شمال، از آسیای میانه، از استپهای قزاقستان، از سمت آمودریا و حتی از سیبری به نام آریایی ها، حالا اسمم اسم گذاشتن روش آریایی ها اینها سرازیر شدن به سمت فلات ایران، بومی های اینا رو کشتن و اومد حکومت تشکیل دادن چه دلایلی وجود داره بر رد چنین فرضیه ای؟ گرچه تا به حال چنین فرضیه ای، اثبات هم نشده ولی مقابلون یه فرضیهی که توی مراکز آکادمیک مطرح بشن واقعا تا به حال یا مطرح نشده یا اگر مطرح شده بلد نشده چه دلایلی برای رد این فرضیهی وجود داره خدمتتون بگم که ما آیه دکتر دل خیلی پردردی داریم چون این همه سند و مدرک دستمون هست صدامونم به قول دکتر جان درخشانی پدا بیا به هیچ جام نمیرسی ایشون میگم برای بتونیم دوباره تاریخ درست ایران رو و حتی تاریخ بخش بزرگی از جهان که قلم رو میانی باشه رو دوباره بیاریم تو کتابای درسی کار بسیار سختی در پیش داریم که باید دائم این همچین جلساتی براش تشکیل بشه گفتگو بشه حالا من مثالهای بد میزنم من یک تحریزی به فرمای شاهی کریمی بکنم برای رد این نظریه تنها تاریخ روایی ما و اینقدر سند برای رد این هست حتی با دانش‌های نوین که یعنی من اینو خدمت عرض کنم چیز که شما فرمودین یک فرضیه اثبات نشده به نام کوچ آریایی ها در آغاز هزاره دوم پیش از میلاد به ایران وجود داره طوری باهش برخورد میشه که تو میگی این وحی منزل از آسمون آمده بله هر کس هم خلاف این حرف بزنه حالا شواهد و دلایلشون برای این چیه هیچی. فقط یک با کلمی یک موضوع رو هی تکرارش, میکنن. هی تکرارش میکنن بعد روایتشون هم یک شکل نیست مبدع این کوچ رو اینم از این سر جهان تا اون سر جهان از اسکاندیناوی، ایتالیا، اوکراین، آسیای میانه، سیبری، خود قطب شمال از هزار جا ذکر میکنن بعد نوع آمدنشون به فلات رو ببین اینا که میگیم ما فقط قربیانیستن ها, نیستن ها. یعنی کسانی هستن تو همین دانشگاه های ایران طوری از این نظریه اثبات نشده فرضی اثبات نشده دفاع میکنن که یعنی اصلا نیاز به غربی نیست بیان وسط تو این زمینه باز خدا پدر مادر همون دانشگاه آمریکای شمالی رو بیامرزه یک کم ملایمترن دو جا سفت گرفتن این موضوع رو یکی اوروپایی یکی خود ایرانیا یعنی پاشونو کردن تو یک کفش که ما آریایی که کوچ کردیم این اون اون سه هزار سال پیش اینجوری شد. 800 پیش از میلاد آمدیم. اول بار آشوریا ما رو دیدن. اصلا جوندی میگه آقا پس باباید منتظر باشیم ببینیم آشوریا کی پارت ها رو دیدن. تاریخ پارت ها از همون موقع بذاریم دیگه. اگرم ندیدنشون هیچ وقت بگیم پارت ها اصلا نبودن. آخه ای چه مبدعی هر و هر کس رو آشوری گزارش کردن بودن گزار... من ایک بار توی مناظره با دکتر شریف وکیدی گفتم آی دکتر اگه گیریم که پارس ها رو اولین بار حافظ گزارش میکرد و تقریف چی بود؟ پارسا ها 800 سال پیش آمدن به فلات... آخه این چه حرفیه؟ یعنی میدونین رو عنوان میکنن که بچه میتونه ردش کنه من فقط حیرت زدم به قول دوستان این رسانه هاشون اینقدر اینو برجسته میکنن و میگن میگن شبیه واقعیت شده برای اثبات یا رد یک نظریه دکتر یک دانش دو دانش یک نوع روش تحقیق دو نوع روش کفایت نمیکنه به گفته دکتر جناب شده رخشانی ما به انباشت داده ها برای اثبات یا رد یک نظریه نیاز داریم شما ببینید ما به هواشناسی تاریخی باد مراجعه کنیم دیرین هواشناسی به استورای کوهن باید مراجعه کنیم به منابع باستانشناسی باید مراجعه کنیم ژنتیک جمعیت بسیار مهمه زبانشناسی کاربردی اصلا جزء اصوله تبارشناسی تاریخی ببینید تمامی علوم باید چند تاشون حداقل یک موضوع رو پشتیبانی کنند تا موضوع مورد قبول به عنوان فرضیه حتی قبول بشه, بشه عنوانش کرد به عنوان فرضیه من از شما میپرسم این کوچه آریا ها رو در سه هزار سال پیش دیدن هواشناسی هیچدلیل خب هیچ هیچ هواشناسی وجود نداره برای دلیل اقلیمی. اقلیمی. خب خوببقول آای فیروزی سه هزار دویست پیش از میلاد اینجا یک خوشسالی شده بود که اصلا تا مارمولکاشم مردن خب اینا تو او خوشسالی وحشنه ان بری چی پا شدن آمدن نجا مگه ببخشید دیوانه بودن او همه و مغزا رو ولکنن پاشا بیان اینجا تو اسطوره ها ما هیچ رد پای از این نداریم شما تو شاهنامه یه خط به من نشون بدین گفته باشه کوچه اینه اونه تو بندهش تو مینوی خیر، هر جا هر جا یک منابع باستان شناسی یک حرف خنددار میزنم میگن تو اینجا رنگش نخودی بوده یه هوی خاکستری شده نازوک شده خب که چی مثلا خب من یک بار تو همین جلسه مناظره به دوستان گفتم ببینید هر سیستانی ما میگیم ایرانی. نه. آیا هر ایرانی هم سیستانیه نه آقا هر کوچی میشه گفت که تغییراتی رو ایجاد میکنه اما آیا هر تغییری دلیلش کوچه رنگ سفال عوض شده ها حتما یک ایده اومدن اینجا به اینا گفتنی سفالی رنگی بودی رنگ چه از این کشکی تر دیگه دلیل نمیشود بیارین تنها دلیلشون هم همینه ژنتیک اصلا یعنی وقتی پای ژنتیک میاد وسط ژنتیک از اون دانشای صفر دیگه یعنی آره یا نه یعنی اینکه دیگه اصلا چهارچرخ این حرف اینا رو میبره هوا و کاملا جالبه میبینن این پجوش ژنتیک نوینو اما ازش میگذره اصلا هیچ پاسخی براش ندارن هیچ وقت مش نمیکن زبان شناسی خب بالا دوستان بیشتر تو این زمینه استادن میبینیم که هیچ خطی نشانه ای ربطتی بر این که این کچ انجام شده باشه هیچ جور پشتیبانی نمیشه. تبار شناسی که مربوط به همون ژنتیک جمعیت میشه یعنی شما بگین اگه اونا یه دلیل بر این قضیه دارن یعنی حالا برعکسش تا دلتون بخواد تو تک تک دانش ها ما تو طول این برنامه ها دونه دونه سند و مدرک و منبع ارائه خواهیم بله من در خدمت نستم متشکرین جنوب ایران مهل گرامی. جناب آقای کریمی گرامی باز هم متشکریم از حضورتون در مورد همین کوچ کوچ خیالی که البته گفته میشه اول از همه مبدأ این کوچ مبدأ جغرافیایی این کوچ معلوم نیست به قول آقای بعضی بعضیا میگن از استپای آسیای میانه اومدن بعضیا میگن از آمودریا از سمت سیبری بعضی از سمت اوکراین و حتی آسیای صغری و قفقاز شمالی هم گفته میشه اومدن حتی هم مشخص نیست بین پنج هزار سال پیش هم میگن سه هزار سال پیش هم میگن یعنی مثلا دو هزار سال فاصله خب درست ما تو دنیای باستان فاصله ها زیاده ولی این که یک کوچه بزرگ رو اینقدر فاصله فاصله تاریخی گفته بشه میشه گفت که نشان از سست بودن این نظریه داره فرمایشات شما رو میشنم بله دقیقا همطور هستش پیلوه فرمایشات ایران ویره بعد بگم که خب بزرگترین برگ برنده ای که دست ما همین بحث ژنتیکه. بله. که هیچ ردخور نداره یعنی هیچ به هیچ عنوان نمیجانن مونگرا بشن. بس هم میتونن خیلی هم وارد این بحث نمیشن. یعنی سعی میکنن همیشه تو به این بحث میشه با صورت مثلا شما نژاد پرست هستین با این هایی که اصلا ارزش علمی نداره. م... اینکه که تو هستین یا نیستی مش پاسخ قانون‌کننده به این پاسخ یافتای ژنتیکی نیست. هیچ پاسخ نمیتونم بدم. سعی میکنم با این گری ها از اینا بگذرند خب نمیتونن در مورد شناسی من خدمت رو ارز کنم که خیلی واضحه که این کوچه ها اگرم بوده از سمت ایران به سمت اروپا بوده الان من حتی میشیدم از اسکاندیناوی نام بردن از لتونی هم حتی اینا. لتونی و لیتوانی حتی بعضی موقعات اسم میبرن که از اونجا به سمت فلات ایران اومدن ولی خب ما داریم میبینیم که مثلا در زبان‌های بومی ما در زبان اوستایی، فارسی باستان، پهلوی واژه‌ای هستش که کاملاً همه اینا شامل میشه یعنی واژه‌ی سلتیک شما شما میتونید توش ببینید، واژه‌ی آلمانی شما میتونید توش ببینید، واژه‌ی لاتین شما میتونید توش ببینید. مثلا دستگاه شماری اوستایی خیلی شبیه و همانند اسلاوی تو فعل‌هاش بسیار به قول اینا نزدیک میشه. بعد در های بومی ما مثلا نام یه پرنده رو بررسی کردیم خیلی من خیلی چیز میگم خیلی سربسته میگم نام پرنده‌ای مثلا ما نگاه کردیم اگر شما ایتالیایی شو بخواید در ایران هست اسپانیایی شو بخواید در ایران هست فرانسوی شو بخواید در ایران هستش پرتغالی شو بخواید در ایران هستش آلبانیایی رو بخواید در اوسا هستش خب چه مثلا پرتغال، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، کاتالونیا حتی، اینا همشون جزء های لاتین حساب میشن. همشون همسایه همن. ولی نام پرنده مثلا در فرانسه هست، دیگه در اسپانیا ایتالیا و پرتغال نیست، ولی در ایران هست. اون چیزی که در پرتغال هست، اون ستا نیست، در ایران هست. اون چیزی که در اسپانیا هست، اون بقیه نیست، در ایران هست. خب چه جوریه همین کوچیکه، خیلی در زمینه‌های مختلف کار کردیم. حتی تبلیغات آوایی که اینا میگن مثلا میگن تبدیل آوایی که مثلا ما عفه میتونیم به ه برسیم مثلا ویژه زبانی فرانسوی بودی که مثلا از واجه که فه داشته میرفته زبان مثلا اسپانیایی تبدیل به ه میشده خب ما این ویژگی در ایران هم داریم یا مثلا قانون گیریم که میاد میگه مثلا تبدیل واجه همخانه اروپایی که مثلا در ژرمنی میشه ه یا تی که میشه سه سه نقطه اینا فقط مثلا مخصوص زمان های در درست که ما هم در عوض سا همچیزی داریم و هم در زمان های بومی که این قانونی که برای جرمن ها فقط خاص میدونن و ویژو میدونن در زمان بومی ایران هم اتفاق افتاده اصلا اینا زمان های بومی ایران مثلا به شمار نیاوردن بسیار ساده داشت گذاشتن در اصل که ما روشهای 1400 پیش از میلاد که زبان شناسی اینو مثلا جدهی زمانی زمان زبان شاسی زبانی که برای جدای اینو فرض کرده گفته 1400 پیش از میلاد هستش ما واژهای بسیاری در زمان تالشی در زبان کردی لوری بختیاری سیستانی بلوچی بسیار فراوان هستند و بسیار هم سال از اینو گذشتن ما این نمونه ساده برای شما میگم خب ببینید مثلا میگن نام فلان قوم پادشاهش مثلا غیر خب آیا این که فلان قوم اسمش قراریاییه نشون میده که مردم اون و مردم منطقه منطق قراریایی بوده این کتیب نام یک فرد نمیتونه زبان یک قومی را بکنه زبان قوم هم آ... ما اسمش محمد محله ما یک محله عربستان <تصفيق> باید به در اون زمان مثلا ابزار اولیهاشون مثل تنور، نان، آتش، آب اعضای بعدن که بسیار مهمه و بس... اصلا تغییر ناپذیره اینا هم موقع چی بوده یه نمونه ساده بگم برای شما مثلا ما از زمان مشروط به این زمان فارسی خب زمان میانجی کشور شده مثلا یک واژه به نام تخمر ما این همه سال با روزنامه و تمام و وسائل رسانه جمعی تونستیم این واژه رو پخش کنیم ولی الان هر محله میری باز داره به بومی خودش این واژه رو میگه بله چطور مثلا من چطور میتونم بپذیرم در کردستان یه قوم ای بوده مثلا آریایی‌ها رفتن تمام زبان اون رو عین بردن بعد مثلا در آذربایجان یه قوم ای بوده تمام یه قومی دیگه از آریایی رفته اونجا تمام واژه اون رو از بین برده ما با این همه ابزار تو این 80 سال نص کار کارو یه دونه واژه نترسیم تغییر بدیم هنوز همشون تا هم به زبان بومی خودشون صحبت میکنن. چطور این اقوامون هم در فلات ایران با این همه اقلیم آب و هوایی که داریم تونسن همه واژه‌ها رو از بین ببرن و هر جو هم گیر میکنن سری میگن خب این واژقه آریاییه. در صورت که شما می‌رید رو پیدا می‌کنید، نه اصلا همچین چیزی نیست. این هم ریشه همساریش کاملا آریایی داره. مثلا مثلا واژه بردی که تا حالا تو زبان لری می‌گفتن واژقه آریاییه که ما مقالم نوشتیم که اصلا همچین چیزی نیست و کاملا میشه آریایی داره. یعنی دانش زبان‌شناسی همش اینه جزیره اینکه آقا زبان در این زمان شد، یعنی چی؟ از هاش کجا رفت؟ این واژهایی که اینا داشتن چطوری شد؟ از کجا یه همه همه واژه همدیگر هم از بین ببرند؟ کردها چطوری چطور میتونستن مردم زبان بومی اونجا رو کاملا به ببرند مثلا فارص چ جوری می تونستن پها چجوری تونستن مگه میشم چی کاری کرد ما با این همه ابزار نمیتونیم این دور زمان این کارو بکنیم. اونها چطور مز ها کردن پاسخی که نمیتونن ببرم فقط یه جمله میگن زبان آنها در زبان آریا یا مستیل فاوراق علمی نیست دلیل بر این نیست که هر حرفی در دانشگاه زده میشه به علمی ممکن این حرفی هم از دانشگاه زده بشه که خیلی هم از اون حرف باشه که در دانشگاه زده میشه و اینکه آقا حتما شما باید دانشجوی رشته‌ای باشی که بتونی علمی صحبت کنی اصلا همچین چیزی نیست ما پژوهشگرایی داریم که خیلی بهتر از دانشگاه بچهای دانشگاه دارن تجوج میکنن و خیلی هم کوشاترن تو زمینه بس اینکه هر حرفی در دانشگاه زده بشه و هر کتابی که در آنجا تدریس بشه بگیم علمی و آکادمیکه اصلا همچین چیزی نیست بله متشکریم حرف خیلی منطقی زدید در اواخر فرمایشاتتون که لزوما هر چیزی که تو دانشگاه هست علمی نیست ما مثلا ممکنه یک شخصی که دکترای مهندسی کشاورزی هم داره ولی اندازه کشاورزی حتی سواد خوندن نوشتن هم نداره سی سال کشاورزی کرده از اون بهتر در واقع بدونه حتی در مورد مسائل علمی دیگه بسیار متشکرم از شما دوستان بابت حضور در این برنامه ما در این برنامه مقدمات و طرح بحث خودمون رو شروع کردیم این که چه انتقادی به این تاریخ داریم این تاریخی که نوشته شده و داره تدریس میشه مبانیش رو در واقع شروع کردیم در قسمت دوم این برنامه که در آینده در خدمت شما خواهیم بود به ادامه‌ی انتقاد از مبانی تاریخی که در صد سال اخیر نوشته شده خواهیم پرداخت و امیدواریم کتاب برنامه‌ی سوم یا چهارم دیگه وارد مسائل خود تاریخ بشیم وارد خود فلات ایران بشیم و فلات ایران رو اصلا بشناسیم ما به کجا میگیم فلات ایران به چه دلیلی میگیم فلات ایران و جمعیتا و گروه‌های جمعیتی که وارد این فلات شدن چه سالی وارد شدن و کی تمدن و و فلاحت رو شروع کردند؟ شما شنوندگان گرامی رو تا آغاز قسمت دوم این خداوند متعال می سپاری خدایی ها رو دیگه دارید